18 انقلاب مداوم انقلاب صنعتی راه جدیدی را برای تبدیل انرژی و تولید کالا گشود که در ابعاد گسترده‌ای انسان را از وابستگیش به اکوسیستم پیرامون آزاد کرد با را خشکاند آبها را با سدها مهار کرد دشت‌ها را آبیاری کرد دهها هزار کیلومتر خط آهن احداث کرد و کلاں شهرهای سر به فلک کشیده ساخت همزمان با تغییر شکل جهان برای تطبیق با نیازهای انسان خردمند، محیط زیست جانوران تخریب شد و انواع گوناگون حیوانات منقرض شدند. سیاره سبز آبی اکنون به یک مرکز خرید از سیمان و پلاستیک تبدیل می‌شود. امروزه قاره‌های زمین سکونتگاه بالغ بر هفت میلیارد انسان خردمند است. اگر همه این توده های مردم را جمع می کردیم و روی یک کفه ترازوی بزرگ قرار میدادیم به رقم 300 میلیون تن می رسیدیم و اگر تمام حیوانات اهلی مثل گاو، خوک، گوسفند و مرغ را جمع می کردیم و روی یک کفه ترازوی بسیار بزرگ دیگر قرار میدادیم وزن آنها از هفت میلیون تن فراتر می رفت در طرف دیگر وزن کل تمام حیوانات بزرگ وحشی باقی مانده از خارپشت ها و پنگوان ها گرفته تا فیل ها و نهنگ ها معادل صد میلیون تن است. کتاب های کودکان، تصاویر ساخته و پرداخته و صفحات تلویزیون هنوز پوشیده از تصاویر زرافه ها، ها و شامپانزه هاست ها اما در دنیای واقعی تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده. در ازای حدودن 80000 هزار ذرافه یک میلیارد گاف در دنیا وجود دارد تنها 200 هزار گرگ در مقابل 400 میلیون سگ اهلی فقط 250 هزار شامپانزه در مقابل میلیاردها انسان بشر به راستی جهان را قبضه کرده تخریب زیست بوم ها به معنی کمبود منابع نیست همانطور که در فصل گذشته شاهدان بودیم، منابع موجود برای انسان دائما افزایش می‌یابد و همین روند احتمالا در آینده هم ادامه خواهد داشت. از این رو پیشگویی در مورد کمبود منابع در آینده تصویری انحرافی است، اما در مقابل ترس از تخریب زیست بوم کاملا کاملاً منطقی است. انسان خردمند شاید در آینده به طیفی از مواد خام و منابع انرژی جدید دست یابد ولی همزمان آنچه را که از زیستگاه طبیعی باقی مانده تخریب می‌کند و خود را هم به انقراض سوق می‌دهد در حقیقت اختلالات زیست ممکن است بقای خود انسان خردمند را هم به خطر اندازد گرمای زمین، بالا آمدن آب و و آلودگی سراسری می‌تواند زمین را برای نوع بشر نامناسب کند و در نتیجه ممکن است آینده به معنای یک مسابقه پرپیچ و خم میان قدرت انسان و فجایع طبیعی ناشی از عملکرد بشر تبدیل شود. همانطور که بشر از نیروی خود برای مقابله با نیروهای طبیعی و چیره شدن بر اکوسیستم استفاده می کند، تا پاسخگوی نیازهای هوازهای خود باشد، ممکن است این کار پیامدهای جانبی غیرمنتظره و خطرناکی داشته باشد. در آن صورت احتمال دارد مقابله با این پیامدها تنها با تغییرات و های باز هم جدیتر در اکوسیستم ممکن شود که موجب از همگسیختگی گسیختگی باز هم بیشتری خواهد شد. بسیاری این روند را نابودی طبیعت می‌نامند اما این در واقع تخریب نیست بلکه تغییر است طبیعت نمی‌تواند نابود شود 65 میلیون سال قبل یک شهاب آسمانی به زمین اصابت کرد و موجب نابودی دایناسورها شد ولی راه را برای پستانداران باز کرد نوع بشر امروزه در حال منقرض کردن نسل بسیاری از جانوران است و ممکن است حتی خودش را هم از حفه روزگار محو کند اما دیگر موجودات زنده جان سالم به در میبرند، مثلا موش ها و سوسکها ها دوران خوبی دارند. این جانداران سرسخت شاید از درون ویرانه های دودالود یک جنگ هسته آخر آخر زمانی بیرون بخزند و دی ان ای خود را تکثیر کنند. شاید 65 میلیون سال دیگر موش های باهوش با قدردانی به گذشته و به ویرانه هایی که انسان از خود به جای گذاشت نگاه کنند. همانطور که ما امروز از آن شهاب آسمانی منقرض کننده‌ی دایناسورها تشکر می‌کنیم اما شایعه انقراض بشر هنوز خام است. جمعیت انسانی دنیا از انقلاب صنعتی به بعد به گونه‌ای سابقه ارصایش یافت. دنیا در سال 1700 محل سکونت تقریباً 700 میلیون انسان بود. این رقم در سال 1850 به 950 میلیون رسید. در سال 1900 تعداد انسانها تقریباً دو برابر شد و به یک و شش دهم میلیارد نفر رسید و در سال 2000 این رقم چهار برابر شد و به شش میلیارد نفر رسید. امروز تعداد انسانها از مرز هفت میلیارد هم گذشته. اصر جدید. همزمان با اینکه دامنه تأثیرات مقتضیات طبیعت بر زندگی انسان خردمند کمتر می شود. اقتدار دولتی و مقتضیات صنعت نوین او را در خود می‌بلعد. انقلاب صنعتی بستر سلسله‌ای طولانی از تجربیات در مهندسی اجتماعی و سلسله باز هم طولانی تری از تغییرات پیش‌بینی نشده در روان و زندگی روزمره او شد. از میان انبوه این تغییرات این بود که روال منظم و یک نواخت زندگی صنعتی جای روال زندگی روستایی سنتی را گرفت کشاورزی سنتی به چرخه طبیعی زمان و رشد نباتات وابسته بود اکثر جوابم نمی توانستند زمان را به طور دقیق بسنجند و چندان هم مایل به این کار نبودند همه کارها و فعالیت‌ها بدون وجود ساعت و برنامه کاری پیش می‌رفتند و خود را بر اساس گردش خورشید و چرخه‌های گیاهان تنظیم می‌کردند. روزهای کاری منظم و یکسانی وجود نداشت و روال همه چیز از فصلی به فصل دیگر کاملا تغییر می‌کرد. مردم میدانستند خورشید کجاست و با دلواپسی های فصل بارانی و زمان برداشت محصول را دنبال میکردند اما درکی از ساعات نداشتند و توجهی هم به گذشت سالها نمیکردند اگر مسافر گمشده زمان ناگهان از یک روستای قرون وستایی سردر آورد و رهگذری سوال می کرد امسال چه است روستایی از سؤال او همانقدر گیج می که از لباسهای مزحک و مسخرش. صنعت نوین برخلاف دهقانان و کفاشان قرون وستایی اهمیت زیادی به خورشید و فصلها نمی بلکه نقت و یک نواختی را تقدیس می کند. برای مثال در یک کارگاه قرون وسطایی همه قسمت کفش را خود کفاش می ساخت، از تخت کفش گرفته تا سگکش اگر یک کفاش دیر به سر کار می‌آمد، کار دیگران مختل نمی شد. اما در خط تولید یک کارخانه یک کفش نوین هر کارگری ماشینی را اداره می کند که قسمت کوچکی از یک کفش را تولید می کند که بعد به ماشین دیگری سپرده می شود. اگر کارگری که ماشین شماره پنج را میگرداند خواب بماند، تمام ماشینهای دیگر از کار می افتد. برای جلوگیری از چنین اختلالی، همه باید به یک ساعت کاری دقیق پایبند باشند. همه کارگران دقیقاً در یک زمان معین به سر کار می آیند. همه وقت غذای یکسانی دارند، چه گرسته باشند چه نباشند. همه وقتی به خانه می روند که سوتی به صدا در می آید و نه وقتی که کارشان را تمام کرده باشند. انقلاب صنعتی جدبل زمانی و خط تولید را به الگویی برای تقریبا همه فعالیت بشری بدل کرد. چندی پس از اینکه کارخانه ها قالب های زمانی خود را بر رفتار انسانی تحمیل کردند، مدارس هم خود را با جدول زمانی دقیق تطبیق دادند و بیمارستان ها، ادارات دولتی و خاربار فروشی ها هم از آنها پیروی کردند. جدول زمانی حتی در مکانهایی که در آنها ماشین و خط تولیدی نبود هم حاکم شد. اگر نوبت کار کارخانه در ساعت 5 بعد از ظهر خاتمه یا بعد، میخانه محل باید ساعت پنج و دو دقیقه باز کند. یک عامل اساسی در رواج جدول زمانی حمل و نقل عمومی بود. اگر کارگران ملزم بودند که نوبت کاریشان را ساعت 8 صبح شروع کنند، قطار یا اتوبوس میبایست ساعت هفت و پنج و پنج دقیقه به دروازه های کارخانه برسد. چند دقیقه تاخیر منجر به تولید کمتر می و شاید حتی به اخراج تأخیرکننده کننده های نگون بخت می انجامید. در سال 1784 یک خط حمل مسافر با یک برنامه منتشر شده در بریتانیا شروع به کار کرد. جدول زمانی آن فقط ساعت عظیمت را مشخص می کرد، نه ساعت رسیدنش را. در آن زمان هر شهر و شهرکی در بریتانیا ساعت محلی خود را داشت که ممکن بود تا نیم ساعت با زمان لندن متفاوت باشد وقتی در لندن ساعت دوازده بود در لیورپول ساعت دوازده و بیست دقیقه بود و در کانتربری ساعت یازده و پنجاه دقیقه بود از آنجا که نه تلفنی وجود داشت نه رادیو و تلویزیونی کسی اطلاعی نداشت و کسی هم اهمیتی نمیداد اولین قطار تجاری بین لیورپول و منچستر در سال 1830 شروع به کار کرد. ده سال بعد اولین جدول زمانی وضع شد. قطارها از درشگه های قدیمی بسیار سریعتر بودند. پس تفاوتها در ساعت محلی مشکل بزرگی بود. در سال 1847، شرکت های قطار بریتانیایی افکارشان را روی هم ریختند و به این نتیجه رسیدند که از آن به بعد تمام جدول‌های زمانی بر اساس وقت رصدخانه گرینبیچ تنظیم شود، نه ساعت محلی لیورپول، منجستر یا گلاسکو. کم کم مؤسسات بیشتر و بیشتری از شرکت های قطار پیروی کردند، بلاخره در سال 1880 دولت بریتانیا به طور غیر منتظره همه جدول‌های زمانی در بریتانیا را ملزم کرد که از گرینویچ استفاده کنند. برای اولین بار در تاریخ کشوری یک وقت سراسری را اتخاص کرد و شهروندان خود را ملزم کرد تا از وقت قراردادی به جای زمانهای محلی یا چرخه های طلوع و غروب خورشید پیروی کنند. این شروع اساسی ای برای یک شبکه جهانی جدول زمانی بود که بر اساس آن تمام ساعتها با دقت کسری از با هم انتباق داشتند. مقدی رسانه های عمومی در ابتدای رادیو و بعد تلویزیون آغاز به کار کردند برای مردم محلی مختلف با فاصله های زمانی گوناگون برنامه پخش می و به این صورت به اولین مروج جدول های زمانی بدل شدند. زنگ ساعت برای اعلام وقت جزو اولین چیزهایی بود که ایستگاه رادیویی پخش می کردند تا مردم نواهی دوردست و کشتی ها به ساعت خود را با آن تنظیم کنند. بعدها ایستگاه رادیو برنامه پخش خبر در هر ساعت را در دستور کار خود قرار دادند. امروزه هر برنامه خبری با اعلام ساعت آغاز می شود که به نظر میرسد حتی از خبر جنگ هم مهمتر باشد تای جنگ جهانی دوم اخبار بی بی سی برای اروپای تحت اشغال نازی ها پخش می شد هر برنامه خبری با یک پخش زنده زنگ ساعت بیگ بن صدای جادوی آزادی شروع می شد اما فیزیکدانان مبتکر آلمانی راهی پیدا کردند تا بر اساس تفاوتهای جزئی در صدای دینگ دانگ این ساعت به وضعیت هوا در لندن پی ببرند. این اطلاعات کمک بسیار با ارزشی به نیروهای هوایی آلمان می‌کرد. وقتی سازمان امنیتی بریتانیا به این امر پی برد آن صدای زنده را با صدای زبط شده ی زنگ معروف ساعت عوض کرد. برای پیروی از شبکه جدول زمانی، ساعتهای دستی ارزان اما دقیق مرسوم شده بود. در شهرهای آشوری، ساسانی و اینکا چند ساعت خوشیدی وجود داشت. در شهرهای اروپایی قرون وستا، معمولا یک ساعت تنها در بالای برج میدان شهر نصب شده بود که ماشین بزرگی بود. این ساعت‌های برجی دقیق نبودند اما از آنجا که ساعت‌های دیگری در شهر وجود نداشت که آن را زیر سوال ببرد اهمیتی نداشت. امروزه تعداد ساعت‌ها در یک خانواده مرفه بیشتر از کل تعداد ساعت‌هایی است که در یک شهر در قرون وستا یافت میشد. شما می توانید با نگاه کردن به ساعت مچی خود یا تلفن هوشمندتان یا ساعت کنار تخت خواب یا ساعت دیواری آشپزخانه یا دستگاه مایکروویو یا تلویزیون یا دستگاه پخش دی‌وی‌دی و یا گوشه کامپیوتر خود وقت را ببینید اگر کسی نخواهد وقت را بداند باید تلاش مضاعفی خرج دهد یک آدم معمولی روزانه ده‌ها بار در روز به ساعتش نگاه می‌کند. زیرا تقریباً هر کاری که انجام می‌دهد بر اساس زمان تنظیم شده. یک ساعت زنگدار او را ساعت 7 صبح بیدار می‌کند. او نان صبحانه یخ را دقیقاً 50 ثانیه در مایکروویو گرم می‌کند. دندان‌هایش را ظرف سه دقیقه مسواک می‌زند تا اینکه مسواک برقی سوت پایان را به صدا درآورد. قطار ساعت 7:40 دقیقه را می‌گیرد تا به سر کار برود. در سالن ورزش روی باند متحرک نیم ساعت راه می‌رود تا اینکه دستگاه سوت خاتمه را بزند. در ساعت 7 بعد از ظهر به برنامه تلویزیونی محبوبش نگاه می‌کند که در فواصل معینی برای پخش آگهی قطع شود که برای صاحب آگهی هزاران دلار خرج برمیدارد. انقلاب صنعتی دهها تحول بزرگ در جامعه انسانی به همراه آورد انطباق با وقت صنعتی یکی از آنها بود دیگر نمونه های برجسته عبارت است از زندگی شهری از بین رفتن نظام رعیتی قدرت گرفتن اختیارات فردی دموکراتیزه شدن فرهنگ جوانان و تلاشی پدر سالاری بود اما تمام این تحولات تحت مهمترین و بی سابقه ترین انقلاب اجتماعی قرار گرفت فروپاشی خانواده و جامعه محلی و جایگزین شدن دولت و بازار تا آنجا که می‌دانیم انسان‌ها از دوران کوهن بیش از یک میلیون سال قبل در روابط نزدیک در اجتماع کوچک زندگی می‌کردند که اکثران با هم خیشاوند بودند انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی تغییری در آن ایجاد نکرد این انقلابها خانوادهها و جوامع محلی را به هم پیوند داد و قبایل شهرها پادشاهیها و امپراتوریها را آفرید اما خانواده و جامعه محلی به عنوان ساختار بنیانی طودهای تمام جوامع بشر باقی ماند از طرف دیگر انقلاب صنعتی طی زمانی بیش از 200 تمامی این بناهای توده‌ای را در هم ریخت و به ذرات کوچکی تنزل داد. اکثر کارکردهای سنتی خانواده و جامعه محلی به دولت و بازار محول شد. فروپاشی خانواده و جامعه محلی. قبل از انقلاب صنعتی زندگی روزمره مردم در سه قالب کهن سپری میشد. خانواده هسته‌ای، خانواده بزرگ و جوامع محلی قومی یک جامعه محلی به گروهی از مردم گفته می‌شد که همدیگر را به خوبی می‌شناسند و برای بقای خود به یکدیگر وابستند. اعضای جامعه محلی در فعالیت اقتصادی خانوادگی کار می‌کردند، مثلا مزرعه خانوادگی یا کارگاه خانوادگی یا اینکه در فعالیت اقتصادی همسایه کار می‌کردند. خانواده خود یک نظام رفاهی بود که ابعاد گوناگون را در بر میگرفت درمان آموزش صنعتگری اتحادیه صندوق بازنشستگی بیمه رادیو و تلویزیون روزنامه بانک و حتی پلیس وقتی فردی مریض میشد خانواده از او مراقبت میکرد وقتی پیر میشد خانواده از او حمایت میکرد و فرزندان او صندوق بازنشستگی او بودند وقتی کسی می‌مرد خانواده از فرزندان یتیم او سرپرستی می‌کرد اگر کسی می‌خواست که یک کلبه بسازد خانواده به او کمک می‌کرد اگر فردی می‌خواست فعالیت اقتصادی دایر کند خانواده پول لازم را تهیه می‌کرد اگر کسی می‌خواست ازدواج کند خانواده همسر او را انتخاب می‌کرد یا حداقل شناخت لازم را از همسر آینده به دست می‌آورد اگر با همسایه نزاعی صورت می‌گرفت، خانواده دخالت می‌کرد. اما اگر بیماری فرد بسیار وخیم بود یا فعالیت اقتصادی جدید سرمایه زیادی طلب می‌کرد یا نزاع با همسایه در حد اعمال خشونت بالا می‌گرفت، آنگاه جامعه محلی دخالت می‌کرد. جامعه محلی بر پایه سنت سنت‌های محلی و یک اقتصاد بدو بستان که اغلب بسیار متفاوت از قانون عرضه و تقاضای بازار است عمل می‌کرد. در یک جامعه قدیمی قرون وسطایی وقتی همسایه من در تنگنا بود، من به او در ساختن کلبهش کمک می‌کردم و از گوسفندهایش مراقبت می‌کردم بدون آنکه توقع دستمزد داشته باشم. وقتی من در مزیقه بودم، همسایه من در عوض به من کمک میکرد. همزمان، فرمانروای محلی تمام روستاییان را برای ساختن قلعش فرا میخواند بدون اینکه چیزی بپردازد. در عوض ما برای دفاع در مقابل راهزنان و بربرها روی او حساب میکردیم. زندگی روستایی مستلزم بدعوبستانهای زیاد و مستمر و پرداختهای پولی معدود بود، البته بازارهایی وجود داشتند اما نقش آنها محدود بود. شما می توانستید ادویه کمیاب، پارچه و ابزار در آنجا بخرید و پزشک و وکیل استخدام کنید. اما کمتر از ده درصد از تولیدات و خدمات مورد استفاده رایج از بازار خریداری می شد. اکثر نیازهای انسانی توسط خانواده و جامعه محلی رفع رجوع می شد. پادشاهی ها و امپراتوری هایی وجود داشتند که وظایف مهمی را انجام می دادند مثل راهانداختن جنگ، ساختن جاده و قصر. شاهان برای این مقاصد مالیات می گرفتند و گاهگاهی سرباز و کارگر طلب می کردند. اما بجز در موارد استثنایی، در امور روزمره خانوادگی و قومی مردم دخالتی نمی کردند. حتی اگر هم می مداخله کنند، این کار چندان برایشان آسان نبود. اقتصاد سنتی کشاورزی برای تأمین نیازهای مقامات حکومتی، پلیس، کارگزاران اجتماعی، معلمین و پزشکان منابع محدودی داشت. در نتیجه اکثر حاکمان نظام رفاهی عمومی یا نظام بهداشت عمومی و یا نظام آموزشی به وجود نمیآوردند و اینها را به خانواده‌ها و اقوام واگذار می‌کردند. حتی اگر حاکمان در موارد کمیابی سعی می کردند بیشتر در امور روزمره ده دخالت کنند که مثلا در زمان امپراتوری شین در چین اتفاق افتاد، این کار را با تبدیل سران و ریش سفیدان خانواده ها و جوامع محلی به عاملین حکومتی انجام می دادند. حمل و نقل و ارتباطات به حدی مشکل به وجود می آورد که دخالت در امور جوامع محلی دورافتاده را بسیار دشوار می کرد و برای همین بسیاری از پادشاهی ها ترجیح می دادند آن امور را به جوامع محلی واگذار کنند. مثلا اموری که گاه حتی برای سلطنت دارای اهمیت اساسی بودند مثل مالیات ها و خشونت، برای مثال امپراتوری عثمانی، انتقام های خانوادگی را برای اجرای ادالت مجاز میدانست تا نیروهای امنیتی را از مشغول کردن به این امور معاف کند. اگر پسر عموی من کسی را میکشت برادر قربانی می مرا به عنوان انتقام بکشد. سلطان استانبول یا حتی پاشای ولایت تا جایی که خشونت در سطح قابل قبولی محدود میماند در چنین درگیری های دخالت نمی‌کردند. در زمان امپراتوری مینگ در چین یعنی 1368 تا 1644 جمعیت در نظام باوجیا سازماندهی شده بود. ده خانواده تشکیل یک جیا میداد و ده جیا یک باو. مقتی یک عضو با او جرمی مرتکب می شد، اعضای دیگر گروه با او می به خاطر آن مجازات شوند به خصوص سران گروه. مالیات ها هم از با او وصول می شد و این جزو وظایف سران با او بود و نه معمورین دولتی تا وضعیت هر خانواده را ارزیابی و میزان مالیات را تعیین کنند. از زاویه دید امپراتوری، این نظم یک امتیاز بسیار بزرگ داشت. به جای گماشتن هزاران مأمور که ناچار بودند بر درآمدها و مخارج خانوادهها نظارت داشته باشند، این وظایف به اهدای سران قومی گذاشته میشد که از وضعیت هر روستایی آگاه بودند و میتوانستند مالیاتها را بدون دخالت ارتش امپراتوری وصول کنند. در واقع بسیاری از پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها چیزی بیش از باج‌گیران بزرگی نبودند که نقش حمایتی داشتند. شاه پدرخانهای بود که برای حمایت توده‌های تحت سلطهش باج جمع‌آوری می‌کرد که گروههای تبعکار همسایه و گروههای محلی کوچک به کسانی که تحت حمایتش هستند آزار نخواهند رساند. شاه کار بیشتری از این هم انجام نمی‌داد. زندگی در آغوش خانواده و جامعه محلی چندان هم آرمانی نبود. خانواده ها و جوامع محلی می توانستند اعضایشان را سرکوب کنند و این خشونت کمتر از خشونت دولتها و بازار نوین نبود و کارکردهای درونیشان اغلب مملو از تننشها و خشونت ها بود و تودهها کار زیادی نمی توانستند بکنند. در دوره 1750 اگر کسی خانواده و جامعه محلی خود را از دست می‌داد، مرده محسوب می‌شد. نمی‌توانست شغلی داشته باشد، نه آموزش و نه مراقبت به هنگام ناخوشی و درماندگی. هیچ کس به او پول قرض نمی‌داد و یا به او در شرایط دشوار کمکی نمی‌کرد. نه پلیسی وجود داشت، نه مددکار اجتماعی و نه آموزش اجباری. چنین افرادی برای بقا ناچار بودند جایگزینی برای خانواده و جامعه از دست رفتهشان بیابند. پسران و دخترانی که از خانواده خود فرار می‌کردند در بهترین حالت می‌توانستند امیدوار باشند که در خانواده جدیدی به خدمتکاری مشغول کار شوند و در بدترین حالت سرباز یا فاحشه می‌شدند. همه اینها طی دو قرن اخیر تغییر کرد. انقلاب صنعتی به بازار قدرت خارق‌العاده داد، کشور را به ابزار جدید ارتباطی و حمل و نقل مجهز کرد و ارتشی از کارمندان، معلمین، نیروی پلیس و مددکاران اجتماعی را در اختیار حکومتها قرار داد. در آغاز خانواده و جامعه محلی سنتی راه را بر بازار و دولت می‌بستند، زیرا تمایل چندانی به دخالت خارجی نداشتند. والدین و سران جوامع اکراه داشتند از اینکه بگذارند نسل جوان تحت تاثیر الغاعت نظام آموزشی سراسری قرار گیرد، به خدمت نظام وظیفه اجباری برود یا به پرولتاریای شهری بیریشه بدل شود. به مرور زمان دولتها و بازار از قدرت روزافزون خود برای ضعیف کردن پیوندهای سنتی خانواده و جامعه محلی استفاده کردند. دولت نیروی پلیس خود را برای متوقف کردن انتقامگیری‌های خانوادگی و جایگزینی آنها با رأی دادگاه به کار می‌گرفت. بازار فروشندگان دوره‌گرد خود را می‌فرستاد تا سنت های دیرین محلی را از بین ببرند و آنها را با روش های پیوسته متغیر تجاری جایگزین کنند. اما این همه کفایت نمی‌کرد. برای در واقعی واقعی قدرت خانواده و جوامع محلی نیاز به وجود ستون پنجم بود دولت و بازار با پیشنهاداتی به مردم نزدیک میشدند که قابل رد کردن نبودند مثلا شخصیت خودت را داشته باش با کسی که دوست داری کن بدون اینکه از والدینت اجازه بگیری شغلی را که برایت مناسب است انتخاب کن حتی اگر های جامعه محلی به تو اخ میکنند، هر کجا که دوست داری زندگی کن، حتی اگر نمیتوانی هر هفته سر میز شام یکشنبه حاضر شوی، تو دیگر به خانواده یا جامعه محلی خود وابسته نیستی. از این به بعد ما یعنی دولت و بازار میخواهیم از تو مراقبت کنیم. ما میخواهیم غذا، سرپناه، آموزش، بهداشت، رفاه و کار برای تو فراهم کنیم و ما میخواهیم تو را از حق بازنشستگی، بیمه و حمایت برخوردار کنیم. ادبیات رمانتیک اغلب فرد را به صورت کسی نشان می دهد که در جنگی علیه دولت و بازار گرفتار آمده. هیچ چیز نمیتواند فراتر از حقیقت باشد. دولت و بازار پدر و مادر فرد هستند و فرد تنها به یاری آنها زنده است. بازار به ما شغل و بیمه و بازنشستگی می دهد. اگر می خواهیم تخصص بیاموزیم می به مدارس دولتی مراجعه کنیم. اگر می فعالیتی اقتصادی دایر کنیم می از بانک وام بگیریم. اگر می خواهیم خانه بسازیم، شرکت ساختمانی آن را برای ما میسازد و بانک به ما می میدهد که در مواردی با سوبسید و کمک هزینه دولتی همراه است. اگر خشونت بالا گیرد، پلیس از ما حمایت خواهد کرد. اگر چند روزی مریض شویم، بیمه درمانی از ما مراقبت خواهد کرد. اگر چند ماه ضعیف و ناتوان شویم، نظام تأمین اجتماعی وارد عمل میشود. اگر احتیاج به کمک شبان روزی داشته باشیم، می توانیم به بازار مراجعه کنیم و پرستاری به خدمت گیریم که معمولاً غریبه است از آن سوی دنیا و از ما با چنان صمیمیتی مراقبت خواهد کرد که نظیر آن را نزد فرزندان خود هم نمی توانیم سراغ بگیریم. اگر استطاعت مالی داشته باشیم می توانیم در روزهای پیری در خانه سالمندان زندگی کنیم. اداره مالیات با ما به عنوان فرد برخورد می میکند و ما را ملزم نمی کند تا مالیات دیگران را بپردازیم. دادگاه ها ما را به عنوان فرد میبینند و هرگز ما را برای جرائمی که دیگران مرتکب شده اند مجازات نمی کنند. نه فقط مردان بالغ بلکه همچنین زنان و کودکان هم به عنوان فرد به رسمیت شناخته می شوند. در تیه بخش عظیمی از تاریخ، زنان اغلب به عنوان مایملک خانواده یا جامعه محلی قلمداد داد می شدند. اما دولت نوین زن را مستقل از خانواده و جامعه محلی به رسمیت می شناسد که از حقوق اقتصادی و قانونی برابر برخوردار است، زنان می توانند برای خود حساب بانکی داشته باشند، خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی میخواهند ازدواج کنند و حتی طلاق بگیرند یا به تنهایی زندگی کنند. اما آزادی فرد بهای خود را دارد. بسیاری از ما بر فقدان پیوندهای خانوادگی و قومی نیرومند سوگواری می کنیم و در مقابل قدرت بیروه دولت و بازار که بر زندگی ما سایه افکنده، احساس از خود بیگانگی و خطر می‌کنیم. دولت و بازار که مرکب است از فردیت‌های بیگانه، بسیار ساده‌تر از دولت و بازاری که در آن پیوندهای خانوادگی و قومی در آنها قویتر بود، در زندگی اعضای خود دخالت می‌کنند. وقتی همسایگان ساکن یک مجتمع آپارتمانی بلند نمیتوانند حتی در تعیین میزان دستمزد به سرایدار با هم توافق کنند چطور میتوان توقع داشت که بتوانند در مقابل دولت پایداری کنند رابطه میان دولت و بازار و فرد پیچیده است دولت و بازار در خصوص حقوق و تعهدات متقابل خود با هم توافق ندارند و افراد شکوه می‌کنند که این دو توقعات زیادی از آنها دارند و خدماتشان ناکافی است. افراد در موارد بسیار توسط بازار استثمار می‌شوند و دولتها به جای اینکه از آنها حمایت کنند با ارتش و پلیس و نظام اداری خود آنها را مورد تعقیب و آزار قرار می‌دهند. اما شگفتانگیز این است که این همکاری اگرچه به طور ناقص عملی می شود زیرا ناقص تمام آن تنظیمات اجتماعی انسانی است که تی نست های بیشماری شکل گرفته. میلیونها سال تکامل ما را به گونه شکل داده که همچون یک عضو جامعه، زندگی و فکر کنیم. فقط دو قرن است که به افرادی بیگانه بدل شده ایم. این را نیروی شگفتانگیز فرهنگ بهتر از هر چیز دیگری به نمایش می‌گذارد. خانواده هسته‌ای به طور کامل از منظر جامعه نوین زدوده نشده. اگرچه دولت‌ها و بازار بخش اعظمی از نقش و اقتدار اقتصادی و سیاسی خانواده را از آن گرفتند، اما بعضی از کارکردهای عاطفی مهم را باقی گذاشتند. خانواده نوین هنوز وظیفه برآورد ساختن نیازهای های عاطفی را به عهده دارد که دولت و بازار تا کنون در پاسخگویی به آن ناتوان بودند. اما خانواده حتی اینجا هم در معرض دخالت های فضاینده است. نقش بازار در شکل دادن شیوهی که مردم زندگی عاشقانه و جنسی خود را پیش میبرند هر چه پر رنگ تر می شود. در حالی که خانواده به طور سنتی نقش وصلت دهنده را بازی می کرد، امروزه این بازار است که ترراح سلیقه رمانتیک و جنسی ما شده و در ادامه به ما کمک می کند تا در مقابل اجرت مکفی به آن دسترسی یابیم. در گذشته عروس و داماد در اتاق نشیمن خانواده با هم ملاقات می کردند و پول از دست پدر یکی به پدر دیگری منتقل می شد. امروزه معاشرت در بارها و کافه ها صورت میگیرد و پول از دست عاشق و معشوق به خدمتکار بار و کافه منتقل می شود. حتی پول بیشتری به حساب بانکی طراحان مود، صاحبان باشگاه های ورزشی، متخصصین تغذیه، آرایشگران و جراحان پلاستیک واریز می شود تا ما را حد مقدور به سمبل های زیبایی بازار تغییر شکل دهند. نظارت دولت بر روابط خانوادگی نیز تیز تر است، به خصوص روابط میان والدین و فرزندان. والدین موظفند تا فرزندان خود را برای آموزش اجباری نزد مدارس دولتی بفرستند. دولت والدینی را که به ویژه از فرزندان خود سوه استفاده می کنند یا علیه آنها اعمال خشونت می کنند، مهار می کند. در صورت نیاز دولت می تواند والدین را به زندان و فرزندان را نزد خانواده های پرورشی بفرستد تا همین چندی پیش اگر پیشنهاد می شد دولت والدین را از تنبیه و تحقیر فرزندانشان منع کند مضحک و غیرعملی جلوه میکرد در اکثر جوامع اقتدار والدین تقدس داشت احترام به والدین و اطاعت از آنها جزو مقدسترین ارزش ها به شمار میرفت و والدین می توانستند تقریبا هر کاری با فرزندانشان بکنند حتی آنها را بکشند به عنوان برده بفروشند و دخترانشان را به عقد مردانی دو برابر مسنتر از آنها درآورند. امروزه اقتدار والدین به طور کامل تحلیل رفته. جوانان بیش از پیش اجازه مییابند از اطاعت از والدینشان نشان امتناع کنند و در عین حال والدین به خاطر هر اختلالی در زندگی کودکان مورد مؤاخذه قرار میگیرند. جامعه خیالی جامعه محلی همچون خانواده نمی نمیتوانست بدون جایگزین عاطفی به طور کامل از صحنه روزگار ناپدید شود. بازارها و دولتها امروزه اکثر نیازهای مادی ما را که روزی جوامع محلی برایمان فراهم می‌کردند برآورده می‌سازند اما باید امکان پیوند‌های طایفه‌ای را هم فراهم کنند و این کار را با ایجاد جوامع خیالی انجام می‌دهند جوامعی که از میلیونها ناآشنا تشکیل می‌شوند و همزمان با مقتضیات تجاری و ملی پیوند خوردند یک جامعه خیالی جامعه ای است که در آن مردم یکدیگر را نمیشناسند، اما تصور می کنند که میشناسند. چنین جامعه ای ابتکار جدیدی نیست پادشاهی ها و امپراتوری ها و کلیسا ها طی هزاران سال همچون جوامع خیالی عمل میکردند. در چین باستان ده ها میلیون شهروند خود را اعضای یک خانواده واحد می‌پنداشتند که پدر آن امپراتور بود در قرون وسطا میلیون مسلمان مؤمن تصور می‌کردند که همگی در جامعه بزرگ اسلامی برادر و خواهر یکدیگر هستند اما چنین جامعه خیالی در طی تاریخ در مقایسه با جوامع صمیمانه ده ها نفره که به خوبی همدیگر را می شناختند نقشی ثانویه ایفا می کردند. جوامع روابط نزدیک و نیازهای عاطفی اعضای خود را برآورده می و نقشی اساسی برای بقا و رفاه اعضای خود داشتند. در دو قرن اخیر، این جوامع به ازمهلال رفتند و راه را برای جوامع خیالی برای پر کردن خله آتفی افراد باز کردند. ملت و قبیله مصرف کننده دو نمونه مهم از چنین جوامع خیالی هستند. ملت همان جامعه خیالی دولت و قبیله مصرف کننده جامعه خیالی بازار است. هر دو این جوامع خیالی هستند زیرا برای همه مشتریان در یک بازار یا برای تمام اعضای یک ملت غیر ممکن خواهد بود تا همدیگر را بشناسند. آنطور که روستاییان گذشته یکدیگر را می شناختند هیچ آلمانی نمی تواند 80 میلیون عضو ملت آلمان را بشناسد و برای 500 میلیون مشتری بازار مشترک اروپا که ابتدا به جامعه اروپا و در نهایت به پیمان اروپا تحول یافت مقدور نیست تا یکدیگر را از نزدیک بشناسند مصرفگرایی و ناسیونالیزم تلاش زیادی به خرش دادند تا این تصور را در ما ایجاد کنند که میلیون ناشناس مثل خود ما به یک جامعه واحد تعلق دارند و همه ما گذشته مشترک، منافع مشترک و آینده مشترک داریم. این دروغ نیست بلکه خیال است. ملت ها و قبایل مصرف کننده درست مثل پول، شرکت با مسئولیت محدود و حقوق بشر همگی واقعیت‌های ذهنی مشترک هستند. اینها تنها در تخیل مشترک ما وجود دارند، اما قدرتشان شگرف است. تا زمانی که میلیونها آلمانی به وجود ملت آلمان اعتقاد داشته باشند، در برابر نمادهای آلمان به حیجان آیند. اسطوره های ملی آلمان را بازگو کنند و آماده ی وقف پول و وقت و جان خود برای ملت آلمان باشند آلمان یکی از بزرگترین قدرت های جهان خواهد ماند ملت بیشترین تلاش را میکند تا خیالی بودنش را پنهان نگهدارد اکثر ملت‌ها می‌گویند که وجودی طبیعی و جاودانی دارند در دورهای بسیار کهن از آمیزش خاک سرزمین مادری با خون مردم به وجود آمدند اما چنین ادعاهایی معمولاً اقراق آمیز است ملت‌ها در گذشته‌های دور وجود داشتند اما اهمیت آنها در گذشته بسیار کمتر از امروز بود زیرا اهمیت دولت بسیار کمتر بود یک ساکن شهر نورنبرگ در قرون وستا ممکن بود نوعی وفاداری به ملت آلمان داشته باشد، اما وفاداری بسیار بیشتری به خانواده و جامعه محلیش داشت که وظیفه برآوردن تمام نیازهایش را داشتند. و علاوه ملتهای کوهن هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته باشند، معدودی از آنها باقی ماندند. اکثر ملت‌های موجود تنها پس از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. خاورمیانه نمونه‌های فراوانی به ما می‌دهد. ملت‌های سوریه، لیبی، اردن و عراق حاصل تعدادی مرزبندی‌های اتفاقی بر روی ماسه‌ها بودند که توسط دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی ترسیم شد که چیزی از تاریخ، جغرافیا و اقتصاد محلی آنها نمی‌دانستند. این دیپلماتها در سال 1918 تصمیم گرفتند که مردم کردستان، بغداد و بسره از آن پس عراقی باشند. بدون این فرانسوی ها بودند که تصمیم گرفتند چه کسانی سوریهی و چه کسانی لبنانی باشند. صدام حسین و حافظ اسد تمام تلاش خود را کردند تا آگاهی ملیشان را که اختراع انگلیس و فرانسه بود تحکیم و ترویج کنند اما نوتهای گذاف آنها درباره باره ملتهای به اصطلاح جاودانی عراق و سوریه تبلی توخالی بود. ملت نمی از هیچ به وجود آید. آنها که تلاش زیادی کردند تا عراق و سوریه را بسازند، از مواد خام تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی استفاده کردند که بعضی از آنها قدمت صدها و هزاران ساله دارد. صدام حسین از میراث خلفای عباسی و امپراتوری بابل استفاده کرد و حتی یکی از نیروهای زرهپوش ورزیده خود را لشکر همورابی نامید. اما این به ملت عراق هویت کوهن نمیدهد. اگر من از آرد و روغن و شکری که از دو ماه پیش در کمد آشپزخانه داشتم کیکی بپزم، به این معنی نیست که خود کیک دو ماه قدمت دارد. در دهه‌های اخیر جوامع ملی به طور فزاینده‌ای تحت شعاع قبایل جماعات مصرف کنندگی قرار گرفته‌اند که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند، اما دارای آداب مصرفی و سلیقه‌های مشترکی هستند و از این رو خود را بخشی از قبیله مصرفی واحد می‌دانند. این بسیار عجیب به نظر می‌آید، اما نمونه‌هایش در اطرافمان فراوان است. مثلا طرفداران مدونا تشکیل یک قبیله مصرف کننده را میدهند. آنها خود را وسیعاً با خرید کردن تعریف می کنند. آنها بلیت کنسرت، صفحه های موسیقی، پسترها، پیراهنها و زنگ تلفن‌های مدونا را میخرند و به این وسیله اعلام می کنند چه کسی هستند. طرفداران تیم منچستر یونایتد، گیاهخاران و فعالان محیط زیست نمونه‌های دیگری هستند. همگی آنها قبل از هر چیز با آنچه که مصرف می کنند شناخته می شوند. این سنگ بنای هویت آنهاست. است. یک گیاهخوار آلمانی ترجیح می دهد که با یک گیاهخوار فرانسوی ازدواج کند تا با یک گوشتخوار آلمانی پویایی بی بیبخفه، انقلاب های قرن اخیر چنان سریع و ریشهی بودند که پایی ترین ویژگی نظم اجتماعی را تغییر دادند. نظم اجتماعی بر حسب سنت خوشک و بود. نظم به مفهوم صبات و استمرار بود. انقلاب اجتماعی سریع استثنا بودند و اکثر دگرگونی‌های اجتماعی از انبوه بیشمار گام های کوچک منتج می شدند. انسان تمایل داشت این طور فرض کند که ساختار اجتماعی ان و جاودانی است خانواده ها و جوامع محلی می برای موقعیت خود در حیطه نظام بجنگند اما فکر تغییر بنیادی ساختار اجتماعی نامعنوس بود مردم مایل بودند خود را با وضعیت موجود تطبیق دهند و اعلام کنند که تا بوده همین بوده. سرعت تغییرات تیه دو قرن اخیر به قدری سری بوده که نظم اجتماعی ماهیتی ان اتاف پذیر و پویا پیدا کرده. اکنون یک وضعیت دائمی دگرگونی حاکم است. وقتی صحبت از انقلابهای نوین می بیشتر به انقلاب فرانسه در 1789، انقلاب لیبرال در سال 1848 و انقلاب روسیه در سال 1917 فکر می‌کنیم. اما حقیقت این است که این روزها هر سال انقلابی برپاست. امروز هر فرد سی ساله می تواند صادقانه به نوجوانان بدگمان بگوید وقتی من جوان بودم دنیا طور دیگری بود. برای مثال اینترنت تنها در اوائل دهه 1990 وسیعا مورد استفاده قرار گرفت. امروز نمیتوانیم دنیا را بدون اینترنت تصور کنیم. اما هر تلاشی برای توصیف ویژگی‌های جامعه نوین شبیه به توصیف رنگ آفتاب پرست است. تنها ویژگی قابل اطمینان تغییرات پیوسته است. مردم به این خو گرفتهاند و اغلب ما نظم اجتماعی را چیزی انعطاف پذیر می‌دانیم که می‌توانیم آن را طبق خواست خود تغییر دهیم. وعده اصلی حاکمان پیشانوین حفاظت از نظم سنتی یا حتی بازگشت به گذشته طلایی از دست رفته بود. در دو قرن اخیر، وعده اصلی سیاست تخریب دنیای قدیم و ساختن یک دنیای بهتر به جایان است. حتی محافظ کارترین هم قول حفظ اوضاع موجود را نمی دهند. هر کسی قول اصلاحات اجتماعی، آموزشی و اقتصادی را می و اغلب این وعده ها را متحقق می کند. درست همانطور که زمینشناسان انتظار دارند که حرکت زمین منجر به زمین ها و فوران آتش بشانی شوند ما هم انتظار داریم که جنبش های اجتماعی به انفجارهای خونین خشونتبار منتهی شوند. تاریخ سیاسی قرون 19 هم و 20 اغلب به عنوان مجموعه ای از جنگ‌های مرگبار، قتلام ها و انقلاب‌ها تشریح شده. همچون کودکی که در چکمه‌های جدیدش از گودالی به گودال دیگر می پرد، این نگرش هم تاریخ را همچون جهش‌هایی از یک حمام خون به هممام خون دیگر می‌نگرد. از جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم و سپس به جنگ سرد از قتل عام ارامنه به قتل عام یهودیان و قتل عام رواندائی ها و از ناپل اون به لنین و هیتلر. حقیقت همین است. اما این فهرست کاملا آشنای فجایع تا حدودی گمراه کننده است. ما تمرکز زیادی روی گودال ها می اما از زمین هموار هنوار قافل میمانیم اصر نوین نه تنها ابعاد بی سابقه ای از خشونت و وحشت بلکه صلح و آرامش را هم تجربه کرده. چارلز دیکنز درباره انقلاب فرانسه نوشت که آن دوره بهترین دوره و همزمان بدترین دوره بود. این نه تنها می تواند در مورد انقلاب فرانسه بلکه در مورد تمام اصری صدق کند که بشارت میداد. این تصویر بخصوص در مورد هفت دهه بعد از جنگ جهانی دوم صادق است. بشر تایی این دوره برای اولین بار با امکان نابودی کامل خود روبرو شد و چندین جنگ و قتل عام واقعی را تجربه کرد. اما این دهه ها همچنین سلحامیسترین دوران در تاریخ بشر بودند با اختلاف زیادی از گذشته، این شگفتنگیز است، زیرا این دهه ها همان دورانی بودند که بیشترین تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به خود دیدند. لایه های زمین ساختی تاریخ با سرعتی بی‌امان در حرکت است، اما آتش اکثرا ها اکثران خاموشند. به نظر می رسد که نظم انعطاف فضیر جدید حتی بتواند بستر دیگرگونی های اساسی ساختاری باشد بدون اینکه از تنش‌های های خشونت متلاشی شود. صلح در زمان ما اغلب مردم قدر عصر سلحامیزی را که در آن زندگی می کنند هیچ کدام از ما در هزار سال پیش نمی توانستیم جان سالم به در ببریم. پس بسادگی فکر می کنیم که چقدر دنیای گذشته خشن بود. و وقتی جنگ ها کمتر می شوند، بیشتر جلب توجه می کنند. بسیاری از مردم امروز بیشتر به موج جنگ ها در افغانستان و عراق خیره شدند. اما صلح را که بسیاری از برزیلی ها و هندی ها تجربه می کنند، نمی نکته باز هم مهمتر این است که درک رنج فردی آسانتر از درک مسائب همه مردم است. اما به هر حال برای درک روندهای تاریخی بزرگ به جای بررسی حکایت‌های فردی نیازمند بررسی آمارهای جمعی هستیم. در سال 2000 جنگ‌ها موجب مرگ 310,000 هزار نفر شدند و جرائم خشونتبار به 520,000 و بیست هزار کشته دیگر انجامید. هر تک قربانی یا خانواده متلاشی شده ای و یا دوست و خیشاوند و مجروح و معلولی در خود یک دنیای نابود شده است. اما از یک چشمنداز گسترده این 830 هزار قربانی تنها یک درصد از 56 میلیون نفری است که در سال 2000 جان خود را از دست دادند. همان سال یک میلیون و دویست وشست هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند یعنی دو ممیز بیست درصد از کل آمار مرگ و هشت و پانزده هزار نفر هم خودکشی کردند یعنی یک و چهل و پنج درصد آمار مرگ آمار مرگومیر در سال 2002 باز هم شگفتانگیزتر بود از 57 میلیون نفر کشته تنها 172 هزار نفر در جنگ کشته شدند و 569 هزار نفر در اثر جرائم خشونت آمیز تلف شدند. از طرف دیگر 873 هزار نفر خودکشی کردند. در سال بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر، علارغم تمام اشاراتی که به تروریسم و جنگ میشد، تمایل کلی مردم بیشتر معطوف به خودکشی بود. نه کشته شدن توسط یک تروریست یا سرباز یا قاچاقچی مواد مخدر. در بیشتر قسمت‌های دنیا، مردم بدون وحشت از یورش قبیله مجاور و قتل عام شدن به دست آنها سر به بالی می‌گذارند. مردم مرفه انگلیس به طور روزمره مسیر میان ناتینگهام و لندن را از میان جنگل می می‌کنند بدون اینکه ترسی از یک گروه یاقی سرمست سبز پوش داشته باشند تا در سر راهشان کمین کند و پولشان را بدزدد و به فقر را بدهد و یا شاید آنها را بکشد و پول را برای خود بردارد. محصلین با ترکه تنبیهی معلم تهدید نمی‌شوند. کودکان را ترس فروخته شدن به عنوان برده تهدید نمی کند، فقط به این دلیل که والدینشان نشان نمی توانند به دهی خود را بپردازند و زنان می دانند که قانون از آنها در مقابل کتک خوردن از همسرانشان و محبوس کردن آنها در خانه دفاع می کند. چنین توقعاتی به طور روزافزونی در سراسر دنیا متحقق می شوند. اقتدار دولت به طور گسترده موجب کاهش خشونت می شود. در طول تاریخ اغلب خشونت ها از خصومت های محلی میان خانواده ها و جوامع محلی برمیخواست به طوری که آمار بالا نشان دهد، حتی امروز جرائم محلی تهدید بسیار کشنده تری از جنگ ها هستند. همانطور که تا کنون شاهدش بودیم کشاورزان کوهن که سازمان سیاسی گسترده تری از جوامع محلی خود نمیشناختند، از خشونت های رایج رنج میبردند وقتی پادشاهیها و امپراتوری ها شدند بر جوامع محلی هم مسلط شدند و خشونت فروکش کرد در پادشاهی های غیر متمرکز قرون وسطا از هر صد هزار نفر بین 25 تا چهل نفر سالانه کشته میشدند. در دهه‌های اخیر که دولتها و بازارها قدرت کامل را در دست گرفته و جوامع محلی از بین نفتهاند خشونت باز هم بیشتر کاهش یافته. امروزه میانگین جهانی قتل فقط نه فقره در میان 100 هزار نفر جمعیت است و اکثر این ها در قلمرو دولت‌های ضعیفی چون سومالی و کلمبیا رخ میدهد. در دولت‌های متمرکز اروپا میانگین قتل در سال یک فقره در میان 100 هزار نفر است. طبیعتاً مواردی وجود دارد که در آن دولت‌ها از قدرت خود برای کشتن شهروندانشان استفاده می‌کنند. و این جای زیادی را در از ما اشغال می و باعث احساس ترس می شود. در تایی قرن بیستم ده میلیون، اگر نگوییم صدها میلیون نفر توسط نیروهای امنیتی دولتهای خودشان به قتل رسیدند. اما باز از یک چشمنداز گستردهتر دادگاه های تابع دولت و نیروهای پلیس احتمالاً سطح امنیت را در سراسر دنیا افسایش دادند. یک فرد امروزی معمولی حتی در دیکتاتوری‌های های سرکوبگر در مقایسه با جوامع پیشانوین کمتر در معرض خطر به قتل رسیدن توسط دیگری قرار دارد. کنارگیری امپراتوری شاید این امر که خشونت در کشورها از 1945 به بعد افسایش یا کاهش یافته قابل بحث باشد. آنچه که غیر قابل کتمان است این است که خشونت در سطح جهانی کاهش یافته شاید بارزترین نمونه فروپاشی امپراتوری های اروپایی باشد در تای تاریخ امپراتوری ها های شورشی را با خشونت تمام سرکوب کردند و آنگاه که زمین را زیر پای خود سست احساس کردند هر آنچه در قدرت داشتند انجام دادند تا بقای خود را حفظ کنند حتی به قیمت راه انداختن خون و این نهایتا به هر مرج و جنگ های پی در پی می انجامید بعد از 1945، اکثر امپراتوری ها یک کنارگیری زودرس سلحامیز را انتخاب کردند. روند فروپاشی آنها نسبتاً سریع، آرام و منظم بود. در سال 1945، بریتانیا بر یک چهارم جهان حکومت می کرد. سی سال بعد، تنها بر تعداد معدودی از جزایر کوچک حاکمیت میکرد و تی این دهه ها به گونه ای سلحامیز و منظم از اکثر مستعمرات خود عقب نشینی کرد. اگرچه بریتانیایی ها سعی کردند با اتکا به نیروی ارتش مناطقی مثل مالایا و کنیا را حفظ کنند، اما در اکثر مناطق خاتمه امپراتوری را با آهی عمیق و نبا عصبانیت پذیرفتند. آنها تمرکز خود را نه بر حفظ قدرت خود بلکه بر انتقال آن به آرام ترین شکل ممکن گذاشتند. مهاتما گاندی بخشی از ستایشی را که به دلیل کیش غیر خشونتیاش نصیب خود کرد را مدیون امپراتوری بریتانی هست. علا رقم سالهای طولانی مبارزه تلخ و خشونتامیز در انتهای حکومت بریتانیا هندیها دیگر ناچار به جنگیدن بر علیه بریتانیایی ها در خیابانهای دهلی و کلکت نبودند. امپراتوری جای خود را به تعدادی دولت مستقل داد که اکثران مرزهای پایداری داشتند و غالبا از زندگی صلحآمیزی در کنار همسایگانشان برخوردار بودند. این حقیقت دارد که ده هزار نفر در چنگال امپراتوری تهدید شده بریتانیا به هلاکت رسیدند و در چندین منطقه بحرانزا عقب نشینی بریتانیا منجر به بروز درگیری های قومی با صدها هزار قربانی شد، به خصوص در هند. اما در مقایسه با یک میانگین تاریخی بلند مدت، عقب نشینی امپراتوری بریتانیا نمونه صلح و نظم بود، امپراتوری فرانسه لجوج بود. فروپاشی آن با نبردهای خونینی در ویتنام و الجزایر همراه بود که صدها هزار قربانی به جا گذاشت. اما فرانسه هم از بقیه مستعمرات خود به سرعت و به صورت سلحا میز عقب نشینی کرد و از خود دولتهای باثباتی به جا گذاشت که در کامه هر مرج فرو نرفتند. اوروپاشی شوروی در سال 1989 علارغم سربرآوردن در گیری های قومی در مناطق بالکان، قفقاز و آسیای مرکزی، باز هم صلح‌آمیزتر بود. تا پیش از آن هرگز یک چنین امپراتوری مقتدری تا به این حد سریع و آرام مزمحل نشده بود. امپراتوری شوروی در سال 1989 به جز در مورد افغانستان، ناچار به عقب های نظامی نشد و این به اشغال خارجی، جنبش‌های شورشی و حتی بسیج های گسترده و نافرمانی های عمومی از نوع مارتین کینگ هم کشیده نشد. شوروی هنوز میلیونها سرباز، صدها هزار تانک و هواپیماهای جنگی و سلاح های هسته‌ای کافی در اختیار داشت تا بتواند تمامی بشریت را چند بار از صحنه زمین محو کند. ارتش سرخ و سایر ارتش های پیمان ورشو وفادار باقی ماندند. اگر آخرین حاکم شوروی، میخایل گورباچف، دستور لازم را صادر کرده بود، ارتش سرخ بر روی های تحت انقیادش آتش میگشود. اما حاکمان شوروی و رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی در بخش اعظم اروپای شرقی به استثنای رومانی و صربستان ترجیح دادند تا کوچکترین استفاده ای از نیروی نظامی خود نکنند وقتی اعضای این رژیم‌ها دریافتند که کمونیسم به ورشکستگی رسیده از اعمال خشونت امتناع کردند و شکست خود را پذیرفتند چمدان‌هایشان را بستند و به خانه‌هایشان رفتند گرباچوف و همکارانش بدون جنگیدن تسلیم شدند و نه تنها فتوحات خود تیه جنگ جهانی دوم بلکه همچنین فتوحات بسیار قدیمیتر خود در نواحی بالتیک، اوکراین، قفقاز و آسیای مرکزی را واگذار کردند و رفتند. فکر کردن به عواقب به این که اگر گرباچوف مثل رهبری سربستان یا فرانسه در قبال الجزایر عمل می کرد، ما را به ترس می اندازد. صلح اتمی دولت های مستقلی که بعد از این امپراتوری ها آمدند به طور برجسته‌ای به جنگ بی بودند. دولتها به جز موارد معدودی بعد از 1945 سرزمین های دیگران را برای تسخیر و الهاق به خود اشغال نکردند. چنین فتوحاتی از دوران کوهن خوراک سیاسی خوبی برای تاریخ سیاسی بودند، بدینگونه بود که اکثر امپراتوری های بزرگ استقرار یافتند و توقع بسیاری از حاکمان و مردم بر این پایه بنا میشد اما لشکرکشی به شیوه رومیان، مقلها و عثمانیها دیگر نمیتواند جایی در دنیای امروز داشته باشد. از سال 1945 به بعد هیچ کشوری که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، تسخیر یا از روی نقشه حذف نشده. هنوز گاهگاهی جنگ های محدودی میان ملت ها برپا می شوند و هنوز میلیون‌ها نفر در این جنگ ها جان خود را از دست می‌دهند. اما جنگ دیگر معمول نیست. بسیاری بر این عقیده اند که از بین رفتن جنگ های بین خاص دمکراسی های سروتمند اروپای غربی است. اما واقعیت این است که صلح پس از آنکه بر تمامی دنیا حاکم شد به اروپا رسید. بنابراین آخرین جنگ های جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی میان پرو و اکوادور در سال 1941 و بین بولیوی و پاراگوه در سالهای 1932 تا 1935 رخ داد و قبل از آن به جز جنگ میان شیلی در یک طرف و بولیوی و پرو در طرف دیگر بین سالهای 1879 تا 1884 جنگ جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی رخ نداد. ما دنیای عرب را به عنوان یک منطقه سلحامیز تصور نمی کنیم. وقتی که کشورهای عربی به استقلال دست یافتند تنها یکی از آنها جنگی تمام عیار را بر علیه دیگری را انداخت یعنی همان اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 تصادماتی در نواحی مرزی به وجود آمده مثلا میان سوریه و اردن در 1970 چندین اشغال مسلحانه مثل دخالت سوریه در لبنان های داخلی متعدد مثل الجزایر یمن لیبی و تعداد بسیار زیادی کودتا و شورش اما به جز مورد جنگ خلیج فارس جنگهای تمام عیاری بین دولت‌های عربی صورت نگرفته حتی اگر ارسه را گسترده تر کنیم و به تمامی دنیای اسلام نگاه کنیم تنها یک مورد دیگر خواهیم یافت و آن جنگ ایران و عراق است جنگی میان ترکیه و ایران پاکستان و افغانستان یا اندونزی و مالزی وجود نداشته در آفریقا وضعیت تا این حد امیدبخش نبوده، اما حتی آنجا هم اکثر درگیریها ها جنگ های داخلی و کودتا هستند. پس از آنکه دولت های آفریقایی در دهه های 1967 به استقلال رسیدند، کشورهای معدودی در صدد تسخیر کشورهای دیگر برآمدند دوره های نسبتاً آرامی هم وجود داشته مثلا در اروپا بین سالهای 1871 و 1914 گالبته اینها به سرانجام تلخی رسیدند اما این بار وضعیت به گونه دیگری است زیرا صلح واقعی به معنای فقدان جنگ نیست صلح واقعی به معنای غیر قابل قبول بودن جنگ است صلح حقیقی هرگز در دنیا وجود نداشته بین سالهای 1871 و 1914، یک جنگ اروپایی امکانی محتمل به نظر می رسید و انتظار وقوع جنگ بر افکار نظامیان، سیاستمداران و توده های مردم سنگینی می این نگرانی در واقع بر تمام دوره های دیگر در تیه تاریخ سایه افکنده. یک قانون آهنین در سیاست بین مقرر می دارد که میان هر دو واحد سیاسی همجوار یک سناریوی فرضی معقول وجود دارد که آنها را ظرف یک سال به جنگ بر علیه یکدیگر خواهد کشاند این قانون جنگل مستاق خود را در اواخر قرن 19 هم اروپا در اروپای قرون وستا، در چین و یونان باستان نشان داده در پشت صلح اسپارتا و آتنیها در 450 قبل از میلاد سناریوی جنگ محتمل 449 قبل از میلاد نهفته بود. امروزه بشر قانون جنگل را نقص کرده. امروزه صلح واقعی وجود دارد و نه فقط فقدان جنگ. برای اکثر واحدهای سیاسی سناریوی جنگ احتمالی تمام عیار تئی سالی که خواهد آمد وجود ندارد. چه چیزی میتواند به جنگ میان آلمان و فرانسه در سال بعد بیانجامد یا بین چین و ژاپن یا بین برزیل و آرژانتین ممکن است تنش های کوچکی به وجود آیند اما تنها یک سناریوی واقعی آخر و زمانی میتواند منجر به یک جنگ تمام ایار سبک قدیمی بین برزیل و آرژانتین در سال 2014 شود که در آن لشکر زرهپوش آرژانتینی دروازههای ریو دو ریودژانیرو را در نوردد و خیلی بمبهای برزیلی بر سر همسایگان بونس آیرسی بریزد. احتمال چلین جنگی شاید هنوز میان بعضی از دولت ها مثلا بین اسرائیل و سوریه، ایتیوپی و ایریتره یا بین آمریکا و ایران وجود داشته باشد. اما اینها استثناء هایی که قاعده را تسبیت می کنند. این وضعیت طبعا می در آینده تغییر کند و ما شاید با مرور گذشته در که دنیای امروز به گونه ای باور نکردنی بوده. اما از یک زاویه تاریخی همین سادلوهی ما بسیار جالب است هرگز تا کنون صلح تا به این حد مسلط نبوده تا آنجا که مردم حتی نتوانند وقوع جنگ را تصور کنند محققین تلاش کرده اند این تحول شادیبخش را در تعدادی از کتب و مقالات توضیح دهند که خواندن همه ی آنها از توان ما خارج است و به چند عامل مهم در این خصوص اشاره کردند قبل از هر چیز هزینه جنگ به حد سرسام‌آوری بالا رفته جایزه صلح نوبل را باید به رابرت اوپنهایمر و همکارانش بابت طراحی بمب اتم اهدا کردند تا به جایزه صلح خاتمه دهند سلاحهای هسته‌ای جنگ بین ابرقدرت‌ها را به یک خودکشی دست جمعی تبیر کرده و امکان تسلط بر جهان به زور اسلحه را غیر ممکن کرده صنیان همزمان با بالا رفتن هزینه جنگ سود و آیدی آن کاهش یافته. در اکثر طول تاریخ حکومت ها می توانستند خود را با غارت و الحاق سرزمین های دشمن ثروتمند کنند. اکثر غنایم ثروتهای مادی بودند مثل زمین، دام، برده و طلا. پس قارت و قصب آنها کار ساده ای بود. امروزه ثروت اساساً مرکب است از سرمایه انسانی، دانش فنی و ساختارهای اجتماعی اقتصادی پیچیده مثل بانک ها. در نتیجه، تصاحب و زمینه کردن آنها به سرزمین خودی دشوار است. به مورد کالیفرنیا توجه کنید. ثروت این سرزمین اساساً بر معادن طلا استوار بود، اما امروز بر سیلیکون ولی و سلولوئید استوار است. چه اتفاقی می توانست بیفتد اگر چینی ها کالیفرنیا را اشغال می کردند و یک میلیون سرباز را در سواحل سانفرانسیسکو مستقر می کردند و به داخل یورش می بردند. چیز زیادی دستگیرشان نمیشد. نمی شد. معدن سیلیکون در سیلیکون ولی وجود ندارد. ثروت در مغز مهندسین گوگل و سیناریو ها کارگردانان متخصصین فنون ویژه هالیوود است که می توانند قبل از اینکه های چینی به سانست بولوار برسند، اولین هواپیما را به مقصد بنگلور یا بنبای بگیرند. تصادفی نیست که جنگ‌های تمام ایاری که هنوز در دنیا اتفاق می افتاد مثل اشغال کوبه توسط عراق، در مناطقی است که ثروت از نوع قدیمی آن است. شیخ کویت می توانستند به خارج فرار کنند اما چاههای نفت باقی میمانند و تصاحب می شود. در همان حال که جنگ کمتر مقرون به صرفه می شود صلح بیش از هر زمان دیگری سودمندتر می شود در اقتصادهای کشاورزی سنتی تجارت دوردست و سرمایه گذاری خارجی مسائل جانبی بودند در نتیجه صلح سود مختصری داشت و همزمان از مخارج جنگ هم اجتناب می‌شد. بگذارید بگوییم اگر در سال 1400 بین انگلیس و فرانسه صلح برقرار بود، فرانسوی‌ها ملزم به پرداخت مالیات‌های کمرشکن جنگی و متحمل مصائب ذهن مشترک ویرانگر اشغال انگلیسی‌ها نمی‌شدند، اما از طرف دیگر صلح برای خزانه آنها هم نفعین نداشت. در اقتصاد نوین کاپیتالیستی، بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری بسیار اهمیت یافتند. به این دلیل، صلح هم امتیازی برجسته شد. تا زمانی که چین و آمریکا در صلح به سر می‌برند، می می‌توانند اقتصادشان را با فروختن کالاهایشان به آمریکا رونق دهند و در وال استریت تجارت کنند و توجه سرمایه گذاران آمریکایی را به خود جلب کنند. و ما آخرین عامل که از عوامل دیگر کم اهمیتتر نیست این است که زمین لرزه ای در فرهنگ سیاسی جهانی رخ داده. بسیاری از حاکمان تاریخ مثل رؤسای قبایل هون، سرکردهگان وایکینگ و کاهنان آستک جنگ را منشأ خیر می‌دانستند. دیگران آن را شری می‌دانستند که باید آن را به نفع خود تغییر داد. دوران ما اولین دوران تاریخی است که حاکمان، سیاستمداران، صداگران، روشنفکران و هنرمندان صلح دوست بر جهان حکومت می‌کنند که واقعا جنگ را هم شر و هم اجتناب پذیر می‌دانند. یک چرخه بازخوردی مثبت میان تمام این چهار عامل وجود دارد. خطر قتل عام صلح جویی را می‌پروراند. وقتی صجویی گسترش می جنگ به عقبشینی بادار می شود و تجارت چکوفا می شود و تجارت هم منافع صلح و هم هزینه جنگ را افزایش می دهد. به مرور زمان این چرخه بازخوردی مانع دیگری برای جنگ به وجود می آورد که میتواند نهایتاً مهمترین عامل شود. شبکه تنگاتنگ ارتباطات بین‌المللی. استقلال اکثر کشورها را زیر سوال برده و این امکان را که هر کدام به تنهایی شعله های جنگ را روشن کند کمتر تر می کند اکثر کشورها دیگر در جنگ تمام عیار درگیر نمی شوند به این دلیل ساده که آنها دیگر مستقل نیستند حتی اگر شهروندان اسرائیل، ایتالیا، مکزیک و تایلند دوچار توهمات مستقل بودن هستند، واقعیت این است که دولت‌های آنها نمی‌توانند سیاست‌های اقتصادی یا خارجی مستقلی را به پیش ببرند و مسلماً نمی‌توانند جنگ‌های تمام ایاری را به تنهایی جلو ببرند. همانطور که در فصل 11 توضیح داده شد، ما شاهد شکل‌گیری یک امپراتوری جهانی هستیم. این یکی هم مثل امپراتوری های پیشین تلاش می کند تا صلح را در چارچوب مرزهایش برقرار کند و از آنجا که این امپراتوری بر تمام دنیا احاطه دارد صلح را بر تمامی دنیا حاکم می کند. پس آیا اصر نوین عصر کشتار احمقانه جنگ و سرکوب است که سنگرهای جنگ اول جهانی، ابرهای قارچی انفجار هسته‌ای بر فراز هیروشیما و جنون خونریزی هیتلر و استالین به نمایش گذاشتند؟ یا اصر صلح که در سنگرهایی که هرگز در آمریکای جنوبی کنده نشد، در ابرهای قارچی که هرگز بر فراز مسکو و نیویورک ظاهر نشد و در چهره آرام مهاتما و مارتین دوترکینگ است. پاسخ در انتخاب مقطع زمانی است. لازم است در نظر آوریم که حوادث سالهای اخیر تا چه حد دید ما را از گذشته تغییر می‌دهند. اگر این فصل در سال 1945 یا در سال 1962 نوشته شده بود، شاید بسیار ناامید کننده تر از این می بود. اما از آنجای که در سال 2014 نوشته شده، تصویر نسبتاً روشندتری از تاریخ نوین به دست می دهد. برای رازی کردن خوشبینها و بدبین ها شاید باید چنین جنبندی کنیم که ما در آستانه بهشت و جهنم هستیم و با استراب میان دروازه یکی و اتاق انتظار دیگری در حرکتیم. تاریخ هنوز تصمیم نگرفته که ما به کدام یک وارد خواهیم شد و هنوز رشته ای از حوادث می‌تواند ما را به هر یک از آن دو سوق دهد.